بسم الله الرحمن الرحيم یک یکی دیگر از احکاماتی که بسیار مهم هستند و طلاب واقعا اینها رو باید به خوبی بیاموزند زمانی هست که ان و ان و ک انو لاکن مخفف شوند یعنی ان بشه ان ان بشه ان که ان بشه که ان و لاکن بشه لاکن ای ببینیم ای ببینیم همون عملی رو که در حالت تجدید دار بودن یا مسقل بودن داشتن در زمان مخفف بودن باز هم دارن یا نه تغییراتی می آید. ببینیم که این درست چی می گوید الامثلا این عملک مت قنون این عملک مت قنون نه رسی این نیست این هست بله بفرما یک دقیقی کوتاه اگر داشته باشی به خوبی پیداش خواهی کرد. حتی در موبایل. آه نه من گفتم ببینید من هم بشرم و من هم گاهی موقع این اشتباهات املایی و گفتاری رو دارم شما ما را اصلاح بفرمایید. خب ان عملکه مطقانون ان مراض اوضالون. از امثله واضح هست که این اگر مخفف بشه هم میتونه عمل انجام بده هم میتونه عمل انجام نده. چرا؟ چون او رو آورده. ما میتونیم بگیم این عملک که متقنون. ما میتونیم بگیم این عملو که متقنون. در گروه اول چطوری ترکیم میشه؟ میگویم این. این مخفف از مسقل هست. عمله اسمش هست منصوب با فتح کاف مضافنله متقنون خبرش مرفو. گروه دوم چطوری ترکی میشه میگیم ان ان مخفف از مسقل است اهمال شده عمل نکرده عملو مبتدا میشه کاف مضافون الیه لمط قانون میشه خبرش من میدونم که ملا انس تو داری یه چیزه کایروس زبط میکنی در این مغزت ان مرضه او ضالون ان مرضه لا این شبیه ترکیب اولی بود امثله گروه دوم، امثال گروه دوم، مال ان هست. دقت بفرمایید مال ان هست. اینجا البته. اگر اگر بر اساس این چهار تا کلمه تقسیم بندی میکرد با چهار گروه از امثله رو می آورد ولی چون چون ان و کان زمانی که مخفف بشن شبیه هم عمل میکنن در سه دسته تقسیم بندی کرده یعنی سه نوع مثال آورده سه گروه از امثله رو آورده اما علم تو ان لیسا للمقصر فلاحون دقت داشته باشید چرا تو رو قبل از ان آورده چون اگر نمی آورد می شد ان این خودش یک درس جداغانی است که چه موقع ان رو بکار می بریم چه موقع ان رو بکار می بریم ولی این, این نقطه رو من یادآوریتون کردم که اگر این ان یا ان بعد از تو بیان دیگه فاتحه می گیرد در وسط جمله هم و بعد از تو هم بله قال الم سيكون رزق شو بيوكوزا قالوا اننا نكور فمصرون يا اريد بس علم تو ليس المقصر فلاح إن آن ان و کان زمانی که مخفف شوند؟ مخفف نه، اینا عمل نمی‌کنند. ان و کان اگر مخفف شوند ببینید اینجا دقت بفرمایید نه اگر مخفف بشه، میتونه عمل انجام بده، میتونه عمل انجام بده، که رد شد. ان چه ان و کان اگر مخفف شدند اینا عمل انجام میدن، اهمال نمی‌شن. ولی الو چیزک چیزای وجود داره فعلا بر اساس این سطحی که شما میخونید دقت بفرمایید ولی اینا یک فرقی که داره این هست که لیسار لیسا چی فیل یا اس اسم آن کی نیست ان و کآن این نقطه رو بدونید که اسمشون همیشه محذوفه و زمیر شانه در اش تونین هست. علم تو آن هو لیست لی فلاح. دانستم که شن تونین هست که موقصر راستگاری ندارد. موقصر رستگاری ندارد. پس خبر ترکیبش این هست. ان آن مخفف از مساقل هست. هو محوط. اسمش هست. لیست لی موقصر فلاح. جمله خبرش هست. که ان قد تلع القمر همچنین هست. در از هست. که انه قد القمر. امسلی گروه سوم الشمس طالعه تون لیکن المطر نازلون لیکن زمانی که مخفف شود وجوباً عمل انجام نمیدهد. دهد. اهمال می شود. اگر بیاد رو قاده همین نکات رو میگوید. بله بله اسمشون زمیر شانه هست که حصف هست بیاید اینجا تخفف انا و ان و ک انا و لیکنه میگه انا و انا و ک انا و, و, و لیکنه مخفف میشون اما انا ف... قاعده بله الان روی قاعده اومدیم دیگه قاعده شست و بیا اما انا فیجوزو انده تخفیف اعمالوها و احمالوها میگه ببینید یک نقطه الان به میگم. ما در نح مسائل مختلفی زیادی دارید. که مخت... در این کتاب اشاره نمی کند. این کتاب نویسندش به هر نظریه‌ای برسد اون نظریه رو به عنوان قاعده میاره. ولی اشاره به نظریات دیگه نمی کند. مثل کتاب های بالاتر دیگه که شما برید اونجا اشاره میکنند که شما مثلا میبینید یکی از میان کسائی و نمیدونم اخفش و ابن جنی و فارسی و این همه ها درستوهی و اخفش و آخر خلیل و بله اینا چه کار میکنند مثلا میبینید که یکی از اینا میگه آقا لکن هم مثلا مثل داره مثلا میدونم که جائز میدونه ولی این نویسنده بزرگوار عادتش بر این هست و است بسیار نیکو برای آموزندگان این علم ضروری و اما و اما بله پس هر دو حالت جایز میشن اگر این مخفف میشه و اذا اهملت دخلت لام الابتداء على الخبر زمانی که احمال شد لام ابتدا بر خبر می آید تا ما بدونیم که این این این نافیه نیست بلکه این مخفف از مسقل هست در امثله گروه اول اگر دقت بفرمایید این امالوکا لموت قانون لام آورده بود روی خبر این امالوکا لموت قانون. حالا ببینید اگر همین لام رو نیاورده بود اگر میگفت این امالوکا لموت قنون ما میتونیسیم این چیش قراره یه حرفک هایی وجود داره که اگر این لام اینجا نمی بود اون موقع بله شما اینجا دقت کنید اگر اگر این عمل احمال بشود واجب است که روی خبر چی بیاریم لامه ابتدا برای اینکه تشخیص بدیم که این این, این نافیه اما اگر اما اگر عمل انجام نداده عمل انجام داده بود، اون موقع دیگه ما میدونیم که این این نافیه نیست این این این مخفف از مسقله دیگه, دیگه اینجا لامه ابتدا روی خبر نبياد فهميديد پس ز... زماني كه اذا همل دخلت لامو الابتداء على الخبر فارقة بين الاثبات والنفي زماني كه اهمال شود داخل میشه لامو ابتداء بالخبر تا فرق بياندازه بين اين مثبت يعني اين مخفف مشاققل و اين نفي اين نافيه و اما ان وكأن فلاتهملاني ان وكأن زمانكم مخفف مشات الى اهمال نميشوند غيره با این فرقه ان الاسم فيهما يكون زمير الشعن محظوفا ولي اسم شون ديگه زمير الشعن هستو محظوفاست كي گفتیم واما لاکنن فتهملو وجوبان اما لاکنن زمانك مخفف شواد زمانك لكن شواد وجوبان احمال مشواد كدر قاتل ندا لکات الزيبارو دارين مورد آورده است ولی مولا سوهل اونجا حواس شطمن جای دیگه بوده مولا سوهل باور بکنید در این ندا، این قدر نکاتی تلایی اشاره کرده است این زیاد مفصل نیست قطرونده کتابه متوسطه است ولی این قدر نکات عجیبی رو این انسان امام نهوی اشاره کرده است که دیگر آنانی که به علوم عربی علاقه دارند اصلا خسته نمیشند از خوندنش واقعا که تا الان که ما تا نصف نحو الواضح رسیدیم اگر الان هم کسی مرا بگوید که بیاد قطر الندار شروع کنیم من براحتی میگویم کارم نصف کار نیست حاضرم اونو دوباره شروع کنیم ولی اگر قطر الندار رو تا نصف ورده بودم من دیگه حاضر نمی شدم. از نصف رهاش کنم <تصفيق>